سیدنا رسول الله و آله قیبین خاطرین المقصومین و و علا عدائه و علاقه المشترین رحمه و علاقه رحمه و علاقه محفظ با آن بود و متعرض کلمات معاصرین یعنی در این اخیر از علمای شیعه بردست الله از ساله هم شد و توضیحات در شد تا اینجا رسید مطلب که را زیب تا مفهوم با اون زوایای مختلفی و حاله محلت کردن و محلت شدن و اگه بکنی جمع انجام بدیم یکی اول از اینجا بود که آیا این به بینامان با مفهوم اصاساً یا با منطوبه؟ و به این تاروز با منطوب به مفهوم سرایت میکنه؟ من رو استاد قدس الله نفسه و آیا خویی تاروز رو با منطوب دیدن از اون راه واضه برشن من نایمی قدس الله نفسه تاروز رو در مفهوم ماه با منطوب دیدن در مفهوم ما با این اختلاف این دو بزرگوار در نتیجه و جمع بندی هر دو یک نتیجه رسیدن مالکویی و اونهای حاصل شدیه که اگر مفهوم حاکم باشه برای آن اگر حاکم نباشه اموم محصن باشه باز برآن مقدر بر بودن اگر ممنوع برش باشه خاروز مسار این خلاسه به عزه اما نقطه اختلافشون در این که خاروز احسن چه دارن به؟ یا منطوع باو یا مفهوم باو منطوع باو مهمونهای بازر تحصیب بودن در محهم محافظ بکنم منطوع با هم. در محهم محالف منطوع با. من محصا در محهم محالف هم منطوع خب اگر ما باشیم و حدیعت این قضیه مثلا گفت اکنوی قدمان از اونم گفت این جاحت دیگران از و اگه باشی پیزه دیو زبادم به نظر میگن که حق با هم باشه و اون این باشه که این دو با هم تعارض آروز ندارن که اصلاحای اون میگه که آدم بودن علت اکنام این موگه علت با به حسد ذات پاروزی ندارن از رو مستنه قیب خاصی نکته خاصی برای پاروزی نیست اگر پاروزی بخواد مطرح بشه در اون نکته انهزالی یعنی نکته نیست نظر ال ایل لیسه الله الهده موضوع برای اتخامه مجید هم لیسه الله مثلا موضوع برای اتران. این دو تاش با هم مشکل پیدا می کنم ولو خودشون فی با هم تاوزی منشه اینه که آیا ایم به و ام حیثیت اکرامه یا مجید به مجید به این که حیثیت در منزر نمیشه مجید و مرد در اینجا در جسی باشه یعنی مثل اینوز انمایی حیثیت نیست حیثیت مجیه پس اگر تاروزی و مردم استاد تاروز می کنن اینجوری باشه که آیا حیثیت علم ما علم یا نه حیثیت مجیه هم باید لحاظ باشیم چون تاروزی روی که استاد تاروز کنن اینجور تو لفظ نیست به یک از اینجا پیدا میشه مسئله این روز دیگری حالا قیل تاروز که این تاروز ما همچازه که اینجور تفسیر کردیم یعنی اینجور معنا کردیم چیجوری تفسیر بکنیم از چون اینم که از نقاط اختلاف من مای بودیدی قاطعه این تاروز اگر باید اینجوری تفسیر بکنیم به اصاس خیلی کلمه نه چلا این تاروز بیمون رو رفتی به کلام نداره اون کلام میگه مجید موضوع از برای این کلام رو گره نسیدونم اما این که مجید خصوصیتی داره عرف هم خصوصیتی داره اینها از فکر ما تکنمه از یه نقطه دیگه اختلاف درمون این شد کار یا این از فکر ما تکنمه یا از خصوصیت کلام این طور اختلافی بینه علامه هست و این تار از اساسم از فرم از جاییست که انحصار پیدا رو شد یعنی علم منحسرن علت اکرام باشه مجیع هم این روزا. اما اگر مجی ثابت نشد منحسرن دیگه تا روز پیدا بشه. پس نقطه سوم اختلاف آیان هم روشن شد که آیا ما کلام انحصار رو میفهمیم یا نه؟ خب مشهور به در مثل اکمه علماء این حساب رو نتونی فهمیم که از این باشه اما هنجایت زیداد میفهمیم. می‌فهمی. پس نقطه اساسی این شد که اگر با ما آزی فرض کنی، نه که مجید علت اکرامه یا که این مشکل نداره این حساب در مجید مشکل درست میکنه اگر مجید منحسرن علت اکرام بشه ولی اینکه که علم هم علت اکرام باشه باید نمیزازن. پس اونی که تا آرز درست کنه انحصار اینجا نقطه سرگون و تا معنی شد نقطه بست و آزدی ها رو تبرد اصطا داشتیم در کفایی که قادم اگه در کلام واحد باشن این انحصار در نمیان حسن محکوم منقل نمیشه با در و کلام مستقل باشن تا محکوم منقل بشه. یا تفسیر دیگری دیگه در اجازه داده شده که اگر این داده برای این حساب از رضع باشه تعارض روش میشه اگر داده برای این حساب مقدمات حکمت باشه تعارض باشه پس شد ما چند نقطه احساسی وقتی این مسئله پیدا شد روشه یکی این که این تعارض از کجاست از مخبومه یا منطوعه دوم که این تعارضی که پیدا شده به لحاظ فیل متی کلمه یا چلامه از وقت من در اینوان رأی مشکول آقام هم بگم. در مقام اول تاروز رو با محکوم دیدن اینسواقه در کلمات مشکول آقام با تاروز مثل معمون آینی با محکوم دید در راستی زبون که آیا به فیل متی کلم یا به چلامه آزور روزی کنم به فیل متی کلم نحساس دو خودم ها هم دادن نه اونی که در کلمات حدود سنده است به کلام دیدن نه به فیل متی ک نفسی ثبت که در کلام وارد باشه یا نباشه این هست این تفسیر اجمالا در بعضی کلمات هست این که حقیقت مفهوم به رضع یا به لابه این هم اجمالا در بعضی نبی این محنا به یعنی موقع حال مفهوم رو رضاق بکنیم با ملاحظه یا حال مفهوم اون وقتا آهارو سیداده این هم اجمالاً هست پس ما ها یک جمعبندی اجمالی که رو انجام ببین و کفیت و خروج در مسئله بعد معلوم شد اما تو توضیح کامل برای محنوش ندادن اما مظلومه های مظلومه های کامل ایشون به دنبال انحساب نبودن، اون انحساب رو باقدر آتله اون اونی که ایشون دنبالش شدن اینکه آله محنوم قید از یعنی قید, قید از موضوع رو بره ایشون از از این, این مسئله از این جغیانگاره بخش شدن و نتیجه گیری کردن که دارمان مفهوم مقدمه مگه این اصلاح شما مخصوص مطلق منورد باشه به اله یا حاکمت یا اخوص مطلق مقدم برای آمونه این هر همه ساله که در این یک ست سالی افیل و ندیر شما هم شیخ انصالی خوندیم مثالش مثالشو در آیه نفر شیخ انصالی خوند این که آیه نفر مشکل چون آم کشتر ذکر شده این اقاض مفهوم نمیشه برپردن خواهی بشیم برای آشنا شدن با مطلب از کردیم بردادیم که حالا کلمات اصحاب ما مثلا متحکرین رو متعرض شدیم یه نقدار برگردیم به تاریخ مصحله و ریش های و ببینیم این چی جوری مطرح شده بنده خب آیمه که مدر حضور میدونن که من از خیلیم مسائل و حصول در امروزه تاریخی در دنیای اسلام بعد از فرق بفرق شد همیشه من اضافه را از کردم سال های شسته سا در معارف دینی فرق آمد از تثیر هم بود اما به اون سورت دعید و اون منطقه نه اجمالا بود شد تثیر از من معارف دینی قدیم باست سب سال بعدش آمدن یک مقدار از مسائل فرق و به اسطلاق وانان زیر بناد و مبانی و حقوقی تشریف جدای کردن تدرین این اصول شد ما در بحث خطابات شفایی همین اخیرمون دردست شدیم که شواهد موجود نشون میده که این بحث خطابات شفایی بعد از سال دیویسته و بعد دو تا نقطه که مطرح شده که قدیم بودن کرامون قضا بردن و قدیم بودن یکی همین که آیا معدوم دبو یقال دبوشه هم بحث محتضله برشاره این طبیاتش کنش حالا بحث کن اینه که این بحث مفهوم و ساقاروز مفهوم شیجوریه این هم مثل هم اول ماست. یعنی افتداعا در فرق آمدن استدلال کردن دررسی کردن بعد آمدن این چندتا مسئله را ها جدا کردن اون ای که ما افتداعا در سر بفته شد بعد که آمازم فرق رو به اصطلاح مزروند بکنن به لحاظ زیر بناهاش و اصولی برای ترکیز بدن این رو از 10 تا 20 تا تا مورد فرقی جدار کردن این چی اولا یک کمی آشنا بشیم برای آشناه با این مسئله در اون مرحله اول یعنی سال 67 تا 67 تا 200 سال این سالها خیلی دقیقه اون حدیبی نیستا اون تو که بیم روز این سالسنه نه اجمالاً عنوان اجمالی اون که به اصطلاف مفت شده در اون بیشتر جنبه های فتوائیه بس که اصول تبدیل شد جنبه های کلی شد یعنی فرس این بحث اجتماعان اگر مسئله کردن نه اونوازش نوامن بیر اونواز کسی در لباسه خطی نمازون حالا یکی اصحابه نمازش با سیلیش میگفت درسته یک اول مسائل و جنبه جمعه داشت بعد آمدن این روز شکل و اصولی جنبه اصول جمعه فتوائیش نمیگفت میگفت نمیشم بگیر سلالال با هم جمعه بس اینو بایله به وقتی مطرح کردن در اردو از ضویی اصولی مطرح کردن نبود، از ضویی اصولی مطرح کردن، از ضوی و از کردن. لذا توی این مسئله گاهی و البته میشه تا از سواد اصولی یا یا برسانی کسی دیگه اشاره این به نبو قصوری مثلا اتنیده که قادمان مثلا عهد صحابه به سوال فکره در این که بحر زرکشی زرکشی من در که جلد دو که در موارس عمومه در این شاپی من دارم که چون خبر تا حسنی 512 ایشون بحث تخصیص عموم به بحثون رو محبت کرده تا صفیه 17 در این کتابات من مطالب شد همه شو میگو کنم اولا ایشون گفته یکی دو تخصیص و عمون به محبون سواه اون و محافظه و محالطه تصریح کرده یک فعلا میکنه هر گوش و نهلا و برد خدا در یکی از علمان شن این نقاط ها نهارو کرده نفس شاقی هلا خود مفهوم سکر اولیش در باب وقت آلا مفهوم شده و الانه نبوی و خصوه اموم اموم تقسیز بشن خوده و هم حالا از درشت و بعد یک خوبی می کند که روشند بشیم شد و اصطلاحاتینا و بعد چی بیشیم خودتو خیلی دارم بردارم خب معلوم شد که شافعی اولا مخموم و صفت و قائل مخموم وحس رو و تخصیص امون هم میدید حالا این از کجا همه من... وقتی که نگاه میکنیم میبیدیم این در حقیقت یک بحث فرقی بوده بیششون که برمیگشته به تظهار از روز و شکل این خصوص مخموم وحس هم گفته به هم میجه. در این خطیه بعد میگه اما مخموم مخالفه من خیلی جاوز را نکنیم مقداری که وقتی به وحث داره میخوام بگم بقیه شوق رو داره نگه خواستن. اما مفهوم مخالفه که ما داره از دا آمان میخوام ریشه های این خلاف رو براتون روشن بکنن اما مفهوم مخالفه که ما داره از دا آمان فی ایجاب زکار سرفن هم فی اربعین شاتن شاتن چهیز تا بودتن یه دوستن انسان بده که مالک شیطان تا بودتن فه. چون مخال فی ساهم و زکاته. زدتا که قنمی که گوستان دیگه یعنی در به اصلاح محلوبه اونی که خودش تو تحرار میگرد میگرده فی ساهم و تلقنمه زکاته. خب محلوب شد کناب شایی که وقتا محلوب وقتا وقتا داشت این حدیث ده فی ساهمه شده دیگه گفتن از این حدیث محلوب میشه که قنم معروفه قنم رو که حالت میگیم این ورکات نداره این یکی دو این که قنمی که باشه حالا دارم قنمی که عامله فرزه نشون میکره خیلی نادر باشه در گاب و در چطور عامله فرض میشه یعنی گاوی رو که چونسو صحبایی کرده کارش نداره این زکات داره اما اگر اون گرفتی برای شوق زدن یا چطور گرفتی برای که کار ازش رو اون دیگه ذکرات نداره در مقابل محلول در مقابل خامله روشن شد پس محلول شد که دینا به شابهی دو تا مطلب رو با شده یکی این که ساهنه در غلط مفهوم داره از کندر ساهنه در بحث مفون، یک اختلاف دیگر هم داره اینه که مفهوم این چی هست در غلط مفهوم چیه بعضی به گفتن همه که من از کن شیه، چیه محلوبه یا آمله در معلومه و آمله ندار بعد به روستن این کلامی سه سایه محلوبه سه تاست. یک معلومه در اون در از نیست دو سایه محلوبه احریف فرمشم برد سه محلوبه در از وقت محلوم بوده سینا زارم که شوشی هم شاید شو <تصفيق> اون این که محلوم داره همون از که محلوم که به یعنی انتفاق ورس و اتغاق محصوف محصوفش که غربه باشه باشه ورس بشه برداریم که سائمه باشه که در مقابل معلوفه و به اتحامه روشنی پس یک ایشون قاعده به مفهوم ورس شد دو قائل شد که این محکوم اون عموم رو تخصیص میزنه این بحث بود پس می شاید بحث کاملا روشن شد اصلش فرهی بوده, بوده یکی از مواد افطلاح بوشن سایمتالغن بوده چون دو رعی بوده یک رعی این بوده. بوده که سایمتالغن هم در ذکات هست یه رعی دیگه که معلومتالغن هر هست اما استحباباً ما زنه چرا؟ عمومتی اولین شاهد شاهده شا شا پس یک عموم بریم چمتا بوستن یک بوستن پس بما برای این طبقی عموم کلن زکا صحبت میگه سانه و هم بر رو و استحباب و تأکید و اینها بکنیم پس در معلوفه هم. یا مثلا بگیم در معلوفه هم مستحبه یا از اون این محبوب نداره این سوال از سانه بوده جواب بسانه دارم ما برگردیم به همه بگه نشاط شاد کن هرکی چیز و بوستان داری که شده لسانش اثباته نمیدیم نکشم نه. نه محکوم و محکوم یا بگیم در محلوط مستحبه یا در محلوطان واجبش مفهوم شد پس روشن شد مسئله تخصیص آن به مفهوم یک ریشه فرقی داره در قبل اول و دوم و مبنای این ریشه فرقی هم در یک مسئله بوده فرقی که مطرح شده آیا کسی که شعر تا بود فنده معلوم داره, داره یا نداره اگر کسی این معلوم فرمزای داره یعنی یا قائل که مفهوم نداره بس یا اگر مفهوم داره تخصیص نمیزن حتواه اون بود زیر این بود اگر چیسی می که نداره مثل خود شافی باید قاعد می شده به محکوم یک دو این که این محکوم آن رو میزنه. دو تو رو با قاعد می شود شد که هر این مسئله ریشه ریشه فقی بوده مثالش هم بحث ساینا هم بوده این یک مثال یک مثال دیگه هم ایشون به مناسبت در زیر بوده ببینید ایشون میگه که شافعی در تخصیص بعدم اینجا نقل کرده از یکیشون و من این توضیح رو ختمتونه از کردم چند با سابقه یک مشکلی که ما الان در کتب اهل سنت داریم که در طور شیعه همت هم اینقدر چون رو زیاد دارن و هر کنه دوست دسته خیلی زیاد میشه ما اینقدر نداریم یک مشکلی در کتب اهل سنت هست حتی از مشاییر خودشون اقوال مختلف نار کردن لذا یه مقدار سابقی ها میادن سرس وقت میکردن در این جهت مثلا یک آقای بخش شافی گفت محقوم تحسیز میزن یه آقای خود که در فلان کتاب پرداخت و اینطوری بود که در فلان کتاب کتاب از شابی نیستند که در فلان کتاب فلان کتاب از شابی نیستند حالا می‌گویم یا؟ وقت جنگ حضور داشتند و او توی جنگ حضور داشت. نه در این راهنمای ما اصولاً یکی از کارهایی که در درس‌های قدیم بود این بود. یک دسته‌سر تحلیل می‌کنند. اگه این وقتی یا آن وقتی که در این. حرف رفتی حالا این گفتیان ما خیلی برای ما ارزشی دقیقت نداره اونی که مهمت ما دنبال رویش های برسیم. بعد ایشون گفته از هر رو از و نصفاد و چون استفاده از نصف میشه دلیل فساره به منظرت نصف مثل خود در که که معلوم کناب همین باقید حالا از این جرد استثلاف و مثله با قولی که آلا محضور شد که این بس یه ریشه قرآنی داره آقا من الابرسون ریشه حدیثی که خودم یک ریشه قرآنی داره اون ریشه قرآنی چی نست که در یک آیه مبارکه در سوره بقره خداوند متعال می فرماید این آمشم متعسکره ولی قللبا متا به معروف وقتی شما خانه‌ها رو سلام می‌بینید غیر ماهی و نشا که علاوه زغول یا برای یک متا هم رو این رو استداره در دفتره ما هست دروازه ما هست بشین متعی متعی از متعی قدرت دروازه دینه یعنی کالایی کالای چیزی متا یک وسیله استفادهی وسیله مثلا تمامسای همتنان باشه فرشی خانه، چیزی بین این طرف ده. این آیه میگه از المطلقات مطام به محروف در سال مساره. ولی زا که سه درجه هست. مثلا اینکه درجهش بالاست با مثلا شطور داده شطور داده شطور داده شطور گام با درجات رو داشتن از پرس کردن من در بخش طلاقی که چشمیست در خود قرآن دو غیر بیشتر نیم حلال موسر قدراب و المخسر محصر قدراب در خود رویانه سه تاست موسر و محصر و متوستر موسر و متوستر اما در خود قرآن دو تاست نه مغلقی که موسر از در قرآن دو تا آمده و در روایه سه تا آمد ولی المطلقات محامون را درز درز و و و و محروف محروف به محروف احتمال از را در معروف دردنش و مسارک باشه یا مسارک با خورکی باشه یا مسارک یا در خورک شهر باشه یا معروف به یعنی فصل که کسی میخواه زن داره کلاحاو زن بچه داره مناسب با بچه های شکل زن بچه نداره فصل کن یه خانمیز که تنگیفات علمی داره میمبار مثال همون لفتاب و چی شعب معرف معروف معرف عقلی یعنی ما غایف فتن دل احتمال داره معروف عام همش معروفه آیات قرآن همیشه احتمالاتش واه احتمالش واسه خب ول متلقات متقوم به معروف کانه ها من سی کل متلقاته قبل از این آیه مشل منه این آیه 241ه سوره بقره اینا حدود الهات به بنظر 20 سال الان تو قرآن بوده این اخیر نیست تا میکنم چود حال از آیات بیسه بیسه بیسه یک مش اتکام طلاق در اینجا هست در صوری برحله که اوائل نصول در برحانه اینه اوائل اوائل میدونم نه یه چند فعایش هم طلاقه میدونم بیسه چه برحانه بیسه شار از اونجوری آیات, مجموع آیات, بله آیات... آیات مجموعه آیات شریبه طلاق اولش این بود گفتی نمی‌دونم چنده 220 تا حالا آره درکی عزیز آیات بعد از طلاق انجید از اونجا شروع آره یک سری آیات یه مجموعه آیات در سوره بقره حدود 20 تا آیات پشت سر هم به احکام طلاق یکیش از اینه این وسطاش یا آخرشه. ولی مطلقات نکاحم بالمعروف درست شد این آخرش او آفر و قبل از این حالا تحجیبش اینه قبل از این خواستش آمده سوال این بوده این مطعه یا مطاع یا کالایی که به خانم داده میشه آیا این در تمام موارد طلابه یعنی اگر انسان از کردن که طلاب داد مثلا مفتولون به ها نیست قبل از دفاع قبل از عروسی طلابش داد اینم محطه هر حاله بخش نیه که این محطه واجبه یا مستحبه که قروف مستحبم گفتن حالا غیر از اون بحث واجب و مستحب اون بخش توی خودش غیر از بخش واجب و مستحب این سؤال مثل چون قبلش اینطوره آیه 236 پنج آیه قبل دید جالا جناح علیکم انتلقتمون نسا مالم تمسوهن اوتفره و لحن فریده قیل عورد اونه که هنوز دخول نشده هم یا من معیل نشد و مکه او هنه ساها مهد روشن شد گفتن از این آیه در میاد که این متاق متعه تنکیه هم بشنید این متعه در وقتی که روخون نشد مالن تمثلونه. پس معروض شد بر اینکه این بحث یک سابقه قرآنی داره، یک سابقه حدیثی داره، یک سابقه فقهی داره. این تقل رحم زارده است که من عرض کردم. اغلب این بخش مونده از اصول فقه، یعنی اصول فقه در حوال درون سال تدوینش پیش ما هم آوردن مثلا کفایی یا تناظر توی ترفندایی، ولی این صورت مثالی حالا اون صورت مدرن شریعت اینجوری بود. یه بحث شاجه به مسادر تشریعه که من اسمش حجت سبوتی گذاشتم. یه بحث شاجه مقام استظهاره و ظهورات پس این بحث ما اصول پر اصولا دو بحث و کناران از این بحث دوم بعد از غمی دوم مدرمند شد نه اینکه نهو بود خفه پش بود تفاش بود به عنوان بنا بود اما مدرمند بشه که تو اصول بیا شکل اصولی به خودش بگیره بعد از قرن دومه، اواخر قرن دوبوم این یک نقصه بلحاظه زمانی یه نکته دیگه هم از کردم شداران عرض از کل در این سنجه مسائل قالباً بر این شد که شاخصی مذهب نباشه مثلا آم مقدمه یا مفهوم مقدمه ممکن بود یک خنفی بگه آم یک خنفی دیگه بگه مثلا مفهوم یک شاکری بگه آم یک شاکری بگه مثلا علمای شیعه بشه میگن آم مقدم نده بیان چیزی نبود که شاخصه مذهب باشی این اشتباه ها ممکن بود در مذهب واحدی که قایل به این طرف باشی یه این استودها اما تو اون مسائل مسادر تشریح اونا شاخصه های مذهب هست اشتباه نشه ها مثلا گفت میگفت و خیاس حجت احلیب نبیتونه به حجت این های مذهب و اون مسائل مسائل فقهی از بعد از بر مطرح شد. اونم زمانش بعد رسول الله. هست. این مسائل استظهارات زمانش قرن دومه در اصول قرن دومه. اما در فقه مطرح شد. پس تا اینجا روشن شد تاریخ مسئله و جای و بناهای مساله روشن شد یک مسئله قدیمی است و انصافا در جز فقهی هم باشه. الان مثلا همینجا آیا مستحب بعد و هر مطلقه مصعداد مدار یا خصوص مطلقه مصغولون به ها؟ اگر ممسغولون با آن نبود یه استحباب طلا نبود منشه اختراح یک آیه در مالن از و مکه اوه؟ یک آیه دل متطلقات مطلقات به معروول؟ رو شد؟ این دیگه یکی میگه ناغوا این متلقات خاص مالا ما تناصو مثلا مفتصومون. یکی هم که نه اونجا یکی بود عامه حالا كل متلقات مون ولی هم در هم تمام آیا آیه یا وجوب تمطیح تمطیح رو تمتی. تمتی محنی محنی محنی محنی محنی محنی محنی نه نصب در اون کلمه از دینه. مثلا تاییدیشی هست استهواب تمتی و کالایی رو به خانم دادن بعد از طلاق غیر از من و غیر از محرین در, در بعض زباد اهل سنت دارن که بعد در محسوس شیخ آمدیشون از اونا گرفت و بعد از در کتاب ما آمد من فکر میگرم که ایمان در محام مشتبه این زن طلاق هم برایش محطمت افرزم خیلیده دارم محروس خب به محام مشتبه این در طلاق سنیا یا علاقیاتی کرامتیه ایم فکر نمیتونه محل این محلی این سه مصر رو میکنن و خوب نبود که این ها نوشته بشه از این گفته بشه چون درست هم میتونی خوب نبود گفته بشه الان یا خاله این مطلب را هم من اینجا گفتم که ببینین الان مثلا در درها کتابم و تحرکر ما مثل فرصان گواده و اینوها هست که امام شبا شبه هم که لیکن این عطلش به محسوس شیخ برمیرده ما قبل از محسوس شیخ هم ندردیم شیخ هم از مساده را گرفته اصحاب من اون حسن زن محضر یکی رو شیخ راشتم با این که خب شیخ کتاب محسوسش مثل نهایه نیست مثل فرصان تحضیب و استفسار نیست الان این شیخ این را رو هم حالا دیست نمیخواستم رو بشن از آیا به زنی که مدخول و ها نباشه باشه نصف محر رو که میده اضافه بر اون وجوب یا استحباب متعهم داره مدخواه هم بای چرا؟ للمطلقات نه تا آن به محروب؟ یکی نه چرا؟ مالا فرصو این که این مطلقاتی که مس نشدن نداره اونی که مس شده منصوصه است، محس خلونده هست دقیقه همونید تا, تا اینجا محسن در تون روشن شد یکی تا اینجا ما تاریخ مسئله رو منعرز بکنن و بعد اولویت بله. بله. چرا مدر نهیت مفهوم باوری نشدن. گناهات مفهوم که این ماله این بسن. بعد حالا من یک نقطه دیگر اینجا بخونم البته من وارد هم هست الان من نمیخوام همه رو عرض کنم. پس از شافی چی کنگیم اولش گفت شابیه گفته که که سیز بعد گفت قوله از هر که سیز در همین صفحه پنجه و سه بعد نقل میکنه از ابن کردانیم از خودم علماشونه بله گفته این دران در سطاب یا خود سلقمون بعدم مثال ها و قال مالک شاکی مطرفایه تا ماسه در رضا فکرشه دیگه سخوردی دو سه مالک نه معاصر از سالس ثالث هم و علی زمانی وقتی زمان میشد چند تا از 67 سال تو ذهن نیست سال حالا سال الان دقیقا تو ذهن نیست و قال مالک امام به اصطلاح اهل سنتی که در مدینه بوده ان از کتاب لا یحصل العموم بلکه ال العموم محددا این من خباید من که این خلاف برمیده به قبل اول و دوم این یکی چیزی نبوده که به ازبات اصول بیاد. الان دو تا از اختاب علماشون ازم بردیم ایکی شافیی که نبود مقبوم یک خسال عموم و مالک استاد شافعی است. مالک قائل بود که لا یک عموم بلی یک اونو الامومو از وقتی این کلام اگر درست شده باشه، اگر مثل شم خیلی خلاصه تردیدش رو پیدا میکنم، اگر در کتابم وجود داشت، اگر کلام درست باشه، مالک مثل رو به لحاظ اصولی معرفی ای فقط فقط میکنه. این نه از فقط فضای مالک نداره، رو کنن. چیک مثالی که میگم، یه بحث اصولی. این نه دلار خطا دار یا خصوصی عموم، بلکه کون عموما مقادیره. وستدل به این نه عمومی نشون یعنی عموم دلیل لفظی و دلیل و خطاب محوم منانوت شبیه رو میگهت دلیل تبعیز درست یعنی مالک از این راه اصولی وارد شد روشن شد مثل ارمون که از راه و اصولی وارد شد ایشون یه قاعده و اصولی ریستن آم ملتوضه منطوحه مفهوم محومه منطوحنی از کلام استفاده شده از لوازم میکنه پس دلالت اون به قوت دلالت منطوق نیست دلالت او از افه چون از افه اون منطوق داره من مقدم میشه این بحث بحث بهتا اصولی نیست اینجور محلق کرده تو استداره با آیی یا روایت بل فدل بل فدل علا ان المعلوف سمه قاب بل, بل. بل. بل ولنا بعد ایشان حالایی میگم ابن کج از علمای شافعی باید باشه بعد ولنها لنها همون ابن کجی که باید بوده اجماع اونا نحن و اصحاب مالک این من سابقاً عرض کرده بودن یکی از چیزهایی که در اهل سنت هست و باید ما این رو توجه بشتشته باشیم علمان شیعه چون این کار ما نمی در علمان شیعه ما رسمیم و اون این که مثلا حتی بزرگان مذهب با رئیس مذهبشون مخالفند. رأی رونار مثلا، تعجب نکن ماها متعارفه نیست. اگر بیان امام صادق اینطور فهمونیم که امام صادق اینطور فهمون زورار خلافش رو این قد ماها نیست. اما در اهل سنت هرچی متعارفه. مثلا میگه ای ابو این اینجور گفت ابو نصر که شادیزیشو در مکتبش اینجور میگه. یعنی اون تفکری که ما در امامت داریم اونا در فقاهت ندارن. ابو یوسف رو شاگرده ابو در تقه ابو حنیفه اما استقلاقه ایجا مقاردن افتر کردن استقلاقه هم وجود کردی ها با مقابل امام نمیگی اما مقابل من یک باید بخارم چون امامی در کتو سنت. شما ها اصلا یا ما ها تعجب بکنیم این متعارفشونه ولیزا من عرض کردن الان یکی از مشکلاتی که ما در تحریر مذاهب علمای اهل سنت داریم گاهی یه مسئله الان بین مالکی‌ها رواج داره با این که خودشون میگن مذهب مالکی مالک نیست این مذهب یکی از شاگردایی کنه های مسئله ای شده این دو با هم دیگه اشتباه نگیرید مثلا در اینجا از مالک نقل کرده که عموم مقدمه بلا فاصله گفته ولنا اجماع اونا نحن و که ظاهرا ای بود باشه آقا ما اجماع داریم و اصفاب ماله حالا خدا ماله گفت اون مقدمه اما اصفابش اجماع دارن الال قول به دلیل کتاب اونا قبول دارن که محکوم ثابته خب دقیقه کنیم اونا قبول دارن محکوم ثابته هم بعد دیگر ها محکوم نگی می تا قبول کردیم محکوم ثابته پس محکوم برها مقدمه الال قول به دلیل کتاب فجاز از تخصیص و بهی که غیرهی من الادله خب تا مطلب روشن شد یه توضیحات مفتسری مونده و سردان ایشالا بحث دیگه تمام می وارد بحث دیگه می